سه 15ام اسلام در ایران دین اسلام در سرزمین عربستان ظهور کرد پیغمبر اسلام حضرت محمد در سال ششم هجری نامههایی به خسرو پرویز پادشاه ایران و هراکلیوس امپراتور روم و نجاشی پادشاه هبشه فرستادند و آنان را به اسلام دعوت کردند بعد از ورود اعراب مسلمان به ایران و فروریختن نظام سیاسی و حکومتی مردم یکباره مسلمان نشدند اسلام آوردن ایرانیان برخلاف آنچه بعضی ها نوشته‌اند همه جا به ضرب شمشیر و زور نبوده است در برخی مناطق درگیری هایی پدید آمد اما گاهی هم مردم به دلیل تحمل نکردن ظلم و ستم حکام و امیران ساسانی با رضا و رغبت به اسلام گرویدند اگر به تاریخ دوره اسلامی در شرق نگاه کنیم میبینیم که بسیاری از دانشمندان جهان اسلام از ایران برخاستند و در رشته های علوم دینی و فقهی آثار ارزنده خلق کردند آنان در دانش های فلسفه و تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نیز در طبیعیات و ریاضیات به هایی دست زدند که به نام آنها در تاریخ علوم و معارف بشری ثبت شده است از میان متون کلاسیک نصر فارسی کلیله و دمنه کلیله و دمنه یکی از قدیمیترین کتاب های دنیا است. این کتاب مجموعی از حکایات برطاموز است که در قالب زندگی جانوران تراحی شده است. کلیله و دمنه از کتب قدیمی هند است که به زبان سانسکریت نوشته شده است. در زمان عنوشی روان، به دستور بزرگ مهر، وزیر حکیم و نامدار او، برزویه طبیب کلیل و دمنه را به زبان پهلوی برگرداند، و سپس در دوره اسلامی ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد. رودکی در قرن چهار روم کلیل و دمنه را به نظم درآورد. از از ترجمه های متعدد نصرالله منشی این کتاب را به شیوه نصر مصنوع قرن ششم هجری با افسودن آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی ترجمه و تحریر کرد. حکایت گفت آوردن که در کوهی بلند درختی بود شاخا آمیخته و بلگ بسیار گرد او در آمده و بر آن درخت هزار خانه زاق بود. و آن زاغان را ملکی بود که همه در فرمان او بودندی در متابعت او روزگار گذاشتندی و اوامر و نباهی او را در حل و عقد و ردق و فتق امتصال نمودندی و در رفاهیت و خص میزیستند در برابر آن کوهی دیگر بود که در شعاب و کوهف آن بومان بسیار مقام داشتند و ایشان را نیز امیری بود که جمله منقاد امر او بودند شبی ملک بومان به سبب دشمنی که میان بوم و زاغ است با لشکر بیرون آمد و به طریق شبیخون خون برزاغان زد و کامی تمام براند و مزفر و منصور و معید و مسرور بازگشت. دیگر روز ملک زاغان لشکر را جمله کرد و گفت دیدید شبیخون بومان و دلیری ایشان بر ما؟ و امروز میان شما چند کشت و خسته و مجروح و پراکنده و بالگسسته است و دشوارتر از این جرأت ایشان است و دلیر شدن بر مالش ما و وقوف بر جایگاه و مسکن و شک نکنم که سخت زود باز آیند و بار دوم دست اول نمایند در این کار تعملی کنید و وجه مسلحت باز نمایید و به اتفاق طریق دف جویید ایران را بهتر بشناسیم مسجد مسجد تاریخانه در شهر دامغان در استان سمنان تاریخخانه دامغان یکی از قدیمی ترین مساجد ایران است که ساختمان فعلی آن مربوط به قرن دوم هجری است باستان اعتقاد دارند که تاریخخانه در اصل یک آتشکده بوده است که بعد از آمدن اسلام به ایران به یک مسجد تبدیل شده است تاریخانه به ترکی قدیمی یعنی خداخانه دامغان یک شهر بسیار قدیمی است و بنابر پژوهش‌های مورخین و باستانشناسان در دوره پیش از اسلام شهر دامغان مدتی پایتخت اشکانیان بوده است.